دمی باغم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد به می بفروش دلق ما که از این بهتر نمی ارزد به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرند زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد رقیبم سر ها کرد که از این باب رخ بر تا چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی ارزد شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است کلاهی دلکش استم ما به ترک سر نمی ارزد چه آسان مینمود اول غم دریاب بوی سود غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد تران به که روی خدز مشتاغان بپوشانی که شادی جهانگیری قم لشکر نمی ارزد چه حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر که یک جومنت دونان دو سد منظر نمی ارزد